در روزگاری دور، تا اونجا که میشه به زمانهای دور برگشت، اون وقتا که حیوونا حرف میزدن، دسته بزرگی از گربه ها تو خونه بزرگ مطروکهی که از شهری بزرگ خیلی دور نبود زندگی میکرد. اونها خونه ها رو به تملک خودشون در آورده بودن و برای راحتی یا سایش خودشون دست به هر کاری می زدن و تا جایی که براشون امکان پذیر بود هرچی میخواستن به دست می آوردن. اونها خوب غذا میخوردن و جای خوبی هم برای زندگیشون ساخته بودند. اگر همان سر اتفاق موش بخت برگشته ای جرعت می میکرد و سر راهشون قرار می گرفت، بر سر راهش هوار می شدند اما، موش را نمیخوردن و فقط با حیفون بیچاره سرگمه بازی می شدند و پیوست اون رو میان دندون و چنگال هاشون و بازیگوشی میکردند و کیفش رو می بردند. پیران شهر نقد میکردند که از پدران و مادرانشون شنیدن که زمانی که تمام کشور زیر پاهای موش‌های های صحرایی و خونگی لگت کوب میشد، و در هیچ نخری از کشور اثری از ظهرزارها دیده نمیشد و همه برای دیدن یک کلاله ذرت حسرت میخوردند. گربه های اون سرزمین این بلایی خانموننس رو که مثل تا اونی بر کشور افتاده بود از میان بردند. اونها میگفتند که همه مردم باید واقعا سیاست بند و قدر شناس گربه ها باشند که ساکنان کشور رو از چنگ موشها رها کردند و زندگی راحتی برای فرزندانشون فراهم کردند کسی نمیدونه که اونها از کجا و چگونه پول به دست می آوردن یا چه کسی به اونها پول میداد که میتونستن هر چیزی رو خریداری کنن. چون همه این اتفاقها مربوط به روزگاری دیرینه البته یک چیز معلوم بود یعنی اونها پول کافی داشتن و برای سر و ساماندهی به کارهای خونه‌شون خدمتکار می‌گرفتن. اونا اگرچه در کنار هم زندگی شادمانه و روحی داشتند و به جون هم نمی‌افتادند و مثل آدم‌ها بر سر و روی هم چنگ نمی‌انداختند، تو کارهای خونه خیلی زرنگ و با عرضه نبودند. پس در تمام مواقع ترجیح میدادند که کسی براشون غذا به و خونه داری کنه گربهها گوشت پخته دوست داشتن و از خامخاری بعدشون بدشون می آمد. واقعا کارهای خونه و پخت و پز براشون دشوار و ناپسند بود و همیشه زنانی رو به عنوان خدمتکار اجیر میکردند. بسیاری از خدمتکارا هم که زندگی در کنارشون خسته و دلزده میشد زمان درازی در خونه گربه ها نمی موندن. در نتیجه اونا هیچ وقت خدمت کار دائمی نداشتند. و تازه توی شهر چو افتاده بود که هر وقت کسی پولش ته کشید می گفت به خونه گربه ها میرم و با اونها زندگی می کنن. و تعدادی از زنان بینوا واقعا همین کار رو می کردن. حالا بدونید که لیزینا از زندگی توی خونه خودشون راضی نبود. چون مادر بیوهش به دختر بزرگش بیشتر علاقه و دلبستگی داشت و بیشتر وقتها با دختر کوچیکش لیزینا بدرفتاری میکرد و چون اون رو باعث همه بدبختی ها و بینواییشون میدونست به اون غذای کافی نمیداد و همواره ناسزا بارش میکرد. اما خواهر بزرگش هر چی میخواست در اختیار داشت و اگر لیزینا زبون به گله و شکایت میکوشد کتک مفصلی هم نوش جون میکرد خلاصه روزی رسید که اون جانش به لبش رسید و بیش از این تاقت نیاورد و به مادر خواهرش گفت حالا که اینقدر از من بیزارید خوشحال باشید که از پیدتون میرم من به خونه گربه ها میرم تا با اونها زندگی کنم. مادرش دست جارو رو از پشت در برداشت و فریاد زنان گفت برو هرچی زودتر گم شد. و به طرفش حجوم برد. اما لیزینا منتظر نمون تا دوباره حرفی بشنبه. اون فوراً پا به دو گذاشت و لحظه ای توقف نکرد. اون دوی دو دوی تا به در خونه گربه ها رسید. اتفاقا، آشپز گربه ها صبح همون روز با صورتی سراسر خراشید و چنگ کشیده خونشون رو ترک کرده بود. خراش های روی صورتش به علت با سر یه گربه ها بود. و اگه زن بیچاره به موقع در نمیرفت، به جای صورت خراشناک چشم ها شکاسه در اومده بود. گربه ها به گرمی به لیزینا خوش گفتن و، اون هم فورا دست به کار نظافت و بغت و پس شد. اون پیوست نگران بود که نکنه غذایی که میپزه با به میل گربه ها نباشه و پرس های روی زبون شونوها رو خوشمزه حس نکنه. دختره که بیچاره برای انجام کارهاش باید به این طرف و اون طرف میرفت. بیشتر وقت‌ها دسته گربه که هر لحظه هم به تعدادشون توی آشپزخونه افسوده میشد تا ببینن آشپز تازهشون چه شکلیه از کارش وا می‌موند. تعداد گربه جلوی پاهاش قدم میزدند و وقتی روی صندلی می‌نشست تا سبزی‌ها رو پاک کنه یا پوست بکنه، تعدادی روی دسته صندلی میپلکیدند. ها هم روی میز کنار دستش بازیگوشی می‌کردند و پنش تایی هم در میون زرفا و قابلمه ها یا روی قفصه ها تمام فضا پر از خورخور و میومیوی گربه ها بود که نشون میداد از حضور آشپز جدیدشون رضایت خاطر دارند. البته لیزینیا هنوز زبونش رو یاد نگرفته بود و بیشتر از اوقات نمیدونست که اونها میخوان چیکار کنند. به هر حال از اونجا که اون دختری مهربون و خوشقلب بود بچه گربه ها رو که روی کف اتاق بلو بودن جمع جور میکرد و به دعوای گربه ها که روی همدیه پنجون میکشیدن خاتمه میداد. اون گربه بزرگی رو که در اون گروه پیرترین گربه بود و پنجول فلش داشت روی دامنش مینشند و قضا میداد. این همه مهربونی و محبت اون در حق گربه ها مطلوبی مصروبی روشون داشت. البته اوضا کمی بهتر شد. مخصوصا زمانی که اون با رفتار گربه ها بیشتر آشنا شد. حالا با اومدن اون اتاق بسیار تمیز و پاکیزه شدن. گوشت خیلی خوب پخته شد و اون از گربه های بیمار به خوبی پرستاری می کرد. با گذشت زمان گربه پیر که اون رو پدر صدا می به دیدارشون اومد. گربه پیر در انباری بالای تپه زندگی می کرد و گاه به گاه برای رسیدگی و احوالپرسی پرسی به خونه گربه ها لیزینا هم از اون به خوبی پذیرایی کرد. گربه پیر همون بار اول که لیزینا رو دید از گربه ها پرسید آیا خدمتکار جدیدتون که مهربونه و چشم سیاه داره خوب به شما میرسه؟ و گربه ها یک صدا گفتن میو میو بله پدرگاتو تا بهار خدمتکاری به این خوبی نداشتیم. پدرگاتو با هر دیدارش از خونه گربه ها همیشه پاسخ یکسانی دریافت میکرد. بعد از مدتی گربه پیر که بسیار هوشیار بود متوجه شد که دختر خدمتکار گربه ها هر بار که او را میبینه قمگین و اندوه زده تر از قبله. یک روز گربه پیر وقتی لیزینا رو توی آشپس در حال گریه دید از اون پرسید. فرزندم، تو رو چی میشه؟ آیا کسی با تو بیمهری کرده؟ دختر با چشمانی عشق و روحقه کنان گفت. آه، نه، همی اونها با من مهربونند فقط دلم برای خونم تنگ شده. از مادر و خواهرم بیخبرم. گاتوی پیر که گربه حساسی بود پی به عمق احساسات دخترکه که خدمت اون گفت به خانه بروه فقط زمانی به اینجا باید که از ته دل راضی باشی. اول باید به خاطر مهربونی ها در حق بچه ها پاداش بگیری. همراه هم به سردابه پایین خونه بیا. جایی که تا به حال پاس به اونجا نرسیده. چون همیشه قفل و کلیدش هم پیش خودمه. لیزینا در حالی که اونها از پله ها به طرف سردابه زیر آشپسخونه پایین می‌رفتند، شگفت زده نگاهی به اطرافش انداخت. مقابلش خمراهایی قرار داشت یکی پر از روغن و بعدی پر از مایه درخشان طلایی بود. پدرگاتو با لبخندی که همه دندون سفید تیزش دیده شدند و تارهای سفیدش در دو طرف دهنش صاف و سیخی سادن پرسید توی کدومی که از این خمره ها میری؟ دخترک زیر چشمی به دوتا خمره نگاه کرد و با کمرویی و در حالی که به فکر فرو رفته بود گفت تو خمره یه روغن دوست ندارم تو آب تلا فرو برم اما پدرگاتو گفت نه نه تو سزاوار پاداشی بهتری و با های قویش اونو گرفت و خمره آب تلاف فرو برد. عجیب در عجیب وقتی لیزینیا از خمره بیرون اومد از سر تا نک پاش مثل خورشید آسمون در یک روز قشنگ تابستونی می درخشید. فقط گناه های صورتی رنگش و موهای سیاه درازش رنگ طبیعی خودشون رو داشتن و بقیه اندامش مثل یک مجسمه از تلای ناب شده بود پدر واتو از سر رضایت خرخور بلندی کرد و گفت حالا برو خونه و مادر خواهرت رو ببین فقط حواست باشه هر وقت خروز قولی و قول سرداد به طرفش برو اما برعکس اگر اولاغ ارعر کرد نگاهش نکنه رو تو برگردون دختره خدمتکار با شناسی پنجول گربه پیر رو نوازش کرد و به طرف خونه به راه افتاد. وقتی به خونه مادرش نزدیک شد، خروز خوند و اون فورا به طرفش رفت. بلافاصله یک ستاره طلایی خوشکل روی پیشونش نشست که برای موهای سیاه براقش مثل تاج بود. کمی بعد الاغ شروع به کرد. لیزینا حواسش را جمع کرد و از روی حسار به مزعیه که قلاغ در اون رحاله چرا بود نگاه نکرد. مادر خواهرش که جلوی خونه ایستاده بودن با دیدنش از روی تعجب و از روی تحسین فریاد کشیدند. فریادشون از این هم بلندتر شد وقتی لیزینا دستمالش رو که پر از یک مشت حلا بود از جیبش درآورد خلاصه سکه های طلا کارش رو کرد. تا چند روز مادر و دخترش با شادی و دلخوشی زندگی کردند چون لیزینا هرچی رو با خودش آورده بود به پای اونها ریخت. به جز جامعه رو که به تنش چسبیده بود و با وجود تلاش بسیار خواهرش که به بخت خوش و سعادتمندی خواهر کچکش حسادت می کرد از تنش در نیومد. البته ستاره طلای روی پیشونیش جاش تکون نمیخورد. اما هر چی سکه طلا در جیبش داشت به مادر و خواهرش داد بعد یک روز صبح پپینا خواهر بزرگتر لیزینا گفت حالا نوبت منه که برم و ببینم از خونه گربه ها چی میتونم به دست بیارم اون دو گوشه نشسته بود جیب بزرگ دوی دامنش دوخت با خودش فکر کرد مقداری از حلای گربه ها رو باید برای خودم بردارم و پیش از برومدن خورشید بر راه افتاد. گروه گربه ها هنوز خدمتکاری به کار نگرفته بودند چون میدونستن که هیچکس نمی تونه جای لیزینا رو بگیره. اونا نبود اون رو واقعا احساس میکردن رو دلتنگش شده بودند وقتی پپینا به خونه گربه ها اومد و اونها فهمیدن که اون خواهر لیزین همه به طرفش دویدن و دورش حلقه زدن. چیزی نگذاش که بچه گربه ها همگی بین خودشون زمزمه کنان گفتن اح, اح میو، اون انگش کوچیکی لیزینی هم نمیشه. گربه های بزرگتر که این حرف رو شنیدن گفتن نیست، ساکت؟ قرار نیست که همه خدمتکارا خوشگل و مهربون باشن. بله، سراحتن میگم که اون حتی انگوش کوچیک لیزینا هم نمیشد. و منطقی ترین و با فکر ترین گربه ها هم خیلی زود این موضوع رو اعلام کردن. درست، همان روز اول اون در آشپس رو به روی گربه های نه که با تماشای آشپزی لیزینا به شکمشون صابون می زده هم حتی گربه جوان و بازیبوش که با یک جست از پنجره باز پا به آشپس خونه گذاشتن رو روی میز نشستند چنان مشتی نوش جونشون کرد که از درد به خودشون بپیچن و یک ساعت تمام ناله کنند. با گذشت زمان ساکنان خونه به بلایی که با اومدن پپینا به سرشون اومده بود بیشتر و بیشتر پی بردند کارها به خوبی انجام نمیشد و با آمدن چنین خدمتکاری که واقعاً گوش تلخ و بود، فضای خونه گربه ها در هم و برهم شد. توی همه اتاقها گرد و و آشغال روی هم تلنبار شد. تارهای انکبو، از اتاق ها و چارچوب پنجره ها آویخته بود. خبری از رخت خوابهای مرتب نبود و توشکهای پر که گربه های پیر و نظار اون را دوست داشتند. از وقتی که لیزینا خونه را ترک کرده بود، حتی یک بار هم تگنده و صاف و مرتب نشد. وقتی پدرگاتو به خونه گربه ها اومد تا ببینه آیا همه چیز مرتبه، دادش از به هم ریختگی یا نامرتبی خونه به هوا بلند شد. یکی از گربه ها گفت، یکی از پاهای سزار بدجوری ورم کرده، انگار شکسته، پپینا با کفش چوبی بزرگش که به پاداش محکم لگدش زد و گربهها های یکی یکی زبان به شکایت باز کردن. دخترک اندری چوبی رو به طرف هکتور پرتاب کرد و به خاطر ضربه اون پشت بدن هکتور زخ شد و حالا هم چرک کرده. سه تا بچه ی هم جلاشش مادرشون مردن چون پپینا یادش رب به اونها که توی و توی اتاق بالایی بودن قضا بده. پدرگاتو این خدمتکار بلایی جونمون شده. کاری کن که از اینجا بره. لیزینا هستن از دستمون عصبانی نمیشد اون حتما خواهرش رو خوب می شنسه. پدرگاتو که هش ماه عصبانیت توی صداش موج می به پپینا گفت همراه هم بیا. و اون رو به سردابه زیر خونه برد و دو خمره بزرگ رو که همونطور که بلیزینا نشون داده بود به اون نشون داد و پرسید دوست داری تو کدامی که از این خمره ها فرو بری و دختر بسرلشت خیلی سری جواب داد خمره آب طلا اون که بوی از مهربونی و نیکی نبرده بود و شرم و حیا هم سرش نمیشد. برقی آتشین توی چشمان زرد پدرگاتو درخشید اون با صدای چون درست ها فریاد زد، اما تو لیاقتش رو نداری و دستش رو محکم گرفت و اون رو تو خمره روغن فرو کرد به طوری که نزدیک بود خفه بشه وقتی بالا اومد در حالی که دست و پا میزد گربه ای انتقام جو اون رو میون پنجول هاش گرفت و به میان تلمبار های خاکستر روی کف سردا به وقتی اون روی پاها شیستا چشمهاش جای را نمیدید و به قدری کثیف شده بود که هر کسی نگاش میکرد حالش به هم میخورد. بعد پدرگاتو اون رو از خونه بیرون انداخت و گفت از اینجا دور شد وقتی هم صدای عرقر اولاغ رو شنیدی به طرفش برو نگاهی به اولاغ بنداز. پپینا خشمگین و ناراحت در حالی که به زحمت روی پاهاش بند بود رو به سوی خونه کرد. سر راهش چوب دستی پیدا کرد که به کمک اون تونست تعادل خودش رو موقع راه رفتن حفظ کنه. تازه چشمش به خونه خودشون افتاد که همون موقع از شمنزار سمت راستش صدای ارعر بلند شد. بلافاصله سرش رو به طرف جایی که صدای عرعر میومد اومد برگردند و همون موقع هم دستش به طرف پیشونیش کشیده شد. چیزی مثل پر مرغ به وسط پیشونیش چسبیده بود با لمس اون متوجه شد که دوم علاقه. دوون دوون در حالی که از شدت خشم و نامیدی جیغ میکشید به طرف خونه دوید. لیزینا دو ساعت تموم وقت گذاشت تا تونست با آوردن لگنی بزرگ پر از آب داغ و دو غالب صابون لایه خاکستر و روغن رو که پدرگاتو سردها سر بدن خواهرش رو با اون آغشته کرده بود پاک کنه و از اون دور کنه اما در مورد دومولا که از وسط پیشونیش سر درآورده بود نتونست کاری از پیش ببره چون درست مثل ستاره مصلد پیشونی خودش سفت و سخت به پیشونی خواهرش چسبیده بود و تکون نمی خش و بانیت مادرشون حد و اندازه نداشت اون اول با دسته جارو و بیرهمانه لیزینا رو کتک زد و بعد دستش رو گرفت و کشون کشون به سر چاه برد و اون رو سرنگون کرد دختر بیچاره گریان و زاران بود و با فریادهای بلند کمک خواست پیش از اینکه که اتفاق بیفته روزی پسر پادشاه موقع عبورش از کنار خونشون لیزینا رو در اتاق نشست و سرگرم دوزندگی بود دید و از زیباییش مات و مفهود شد. بعد از اینکه دو یا سه بار دیگه به اونجا آمد، بالاخره دلجارتی پیدا کرد و پشت پنجره رفت و با صدایی بسیار آروم و به زمزمه گفت دو شیزه که زیبا، آیا عروس هم میشی؟ و اون پاسخ داد، حتماً صبح که شد وقتی شاه ساده بازگشت تا عروسش رو ببره اون رو پیچیده در پارچه ای سفید دید. مادر که دلش میخواست پسر پادشاه به جای لیزینیا با دختر دیگرش پپینا ازدواج کنه گفت رسم ماست که داماد عروسش رو به این شکل از دست و پدر و مادرش بگیره. اون دو اوناغ رو مثل گیس به دور سر پپینا زیر روسریش بسته بود. شاهزاده که جوان و در بسیاری از موارد خام بود، بدون هیچ اعتراضی دست عروسش رو گرفت و اون رو سوار کالسکه کرد و به سوی قصر براه افتاد. راهش از کنار خونه قدیمی که در تملک گربه ها بود میگذشت. سشت. گربه ها باش پنجره ایستاده بودند. چون خبر به اونها رسیده بود که شاهزاده قصد داره با زیباترین ترین دختر روگ زمین که وسط پیشونیش ستاره طلایی داره، پیونده همسری ببنده. اونا مطمئن بودن که اون دو چیز کسی بجز لیزینی های دوستاشتنی و مهربونشون نیست. در حالی که کالسکه به آهستگی از جلوی خونه میگذشت گربه ها به نظر میرسید، از سراسر جهان در اون خونه گرد اومده بودند. یک صدا و از ته دل ترانهی سردادن. میو میو میو میو میو، شاهزاده ببین پشت سر تو، زیبا لیزینا افتاده توچا به خونه میبری زش رو پینا از غذای روزگار کالسگران که, که زبان گربه ها رو میتونست جای استاد و شاهزاده رو که کم و بیش با زبون گربه شنا بود آگاه کرد اون از شاهزاده پرسید سرورم عالی جناب آیا متوجه شدی که ماد گربه های پیر چی میگن؟ و گربه ها بار دیگه شیر گربهایشون رو بلندتر از قبل میومیو میو کنان سر دادن. شاه با حرکت سریع دستش روبند رو از چهره دوشیزه کنار زد و همین که چشمش به صورت پف کرده پپینا و دومه پیشیده به دور سرش افتاد فریادکنان گفت ای خیانتکار و دستور داد که کالسکه رو برگردوند. اون که از خشم به خودش می دختر بزرگتر را به طرف مادر پیرش که اون رو فرید داده بود پرت کرد و دست به شمشیر برد و با صدایی که بر تمام وجود زن پیر لرزان نخته بود سراغ لیزینا رو گرفت. زن پیر هراسون به سر چاه رفت و زندانیش را بیرون آورد جامعه لیزینا و ای که بر پیشونیش داشت با تابندگی بسیاری میدرخشید. شاهصاده دست عروس باقیش رو گرفت و سوار کالسکه کرد و اون رو به قصد رو نزد پدرش پادشاه برد و تمام قصر درخشان شد. روز بعد مراسم پیوند زن و شویشون برپا شد و اونها با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگیشون را آغاز کردن. و همه گربه ها به سرکردگی پدر نیز در جشن عروسیشون حاضر شدن.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 ماجراجویی در سرزمین های زیر, در سرزم در زیر دریا همه اینها و بیش از اینها ها در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی.